حسابها شد همین که جوان خارج شد پابل پاولویچ خود را به طرف ورچنینوف انداخت و فریاد کشید دیدید دیدید ورچنینوف بی این که بی گفت بله شما شانس ندارید اگر دردی که در سینه حس می کرد و دائمان شدید می شد، او را اینطور آزار نداده بود و بیقرار نکرده بود هرگز نمیگذاشت این کلمات بر زبانش جاری گردد. پاول پاولوویچ، مثل اینکه آتش گرفته باشد از جا پرید. و شما؟ ترحم کردید و دستتن را به من برنگرداندید. ها؟ فرصتش را نیافتم. قلب شما از ترحم آن بود. در حقیقت، دوستی بودید که برای یک دوست حقیقی دلسوزی می کند ها؟ ورچانینوف متغیر شد و گفت: بسیار خوب. بله. من به شما ترحم کردم. به طور خلاصه برایش شکایت کرد چگونه دستبند را به او داده بودند و چگونه دیش د تقریبا با زور او را مجبور کرده بود که واسطه شود. لابد میفهمید که نمیخواستم آن را بگیرم به اینکه این کار را بکنم به قدر کافی می میدیدم؟ پاول پاولویچ با زرخن گفت: «شما هم سست شدید و فریب خوردید آن را گرفتید آنچه که در این باره میگویید است. وانگهی باید از من معذرت بخواهید همین الان برایتان واضح شد که خطر اصلی من نیستم خطرهای دیگری هم وجود دارد اما شما هم سست شدید و فریب خوردید پاول پاولویچ نشست و لیوانش را پر کرد گمان می‌کنید در برابر این بچه سر فرود خواهم آورد او را مانند شیشه‌ای در هم خواهم شکست همین فردا آنجا می و او را در هم می‌شکنم. هوای اتاق بچه را پاک و منزد خواهم کرد. لیوانش را به یک جرعه سر کشید و دوباره پر کرد. رفتارش مثل رفتار آدم زرنگی تند و چابک شده بود که به اون نمیامد. تماشا کن، تماشا کن، نادنکا و ساشنکا، بچه های کوچک دلپسیر. بغز و کینه گلویش را می فشرد. از خود بیخود شده بود. دوباره صدای موه شرعت در اتاق پیچید. برق خیر کننده ای آسمان را رو روشن کرد و باران و طوفان شروع شد پاول پاولویچ بلند شد و پنجره را بست لحظه پیش آن جوانک پرسید آیا از طوفان می ترسید؟ ای، ای،, ای ولچانینوف از طوفان بترسد؟ وقتی کوبیل نیکوف یعنی چه؟ وقتی کوبیل و راجع به سال داشتن شما ها؟ یادتا می پاول پاولویچ با لحن زننده ای ادامه می ده. ویلشان گفت با وجود این مثل اینکه خیال رفتن ندارید به اندازه درد شدید بود که به زحمت می توانست کلماتش را ادا کند من می هرچه هفته بکنید پاول پاولویچ با رنجیدگی خاطر گفت در همچین هوایی سگ را هم بیرون نمیکنند و تقریبا خوشحال بود که دلیلی برای رنجیدن به دست آورده است ویلچانینوف با لکنت زبان و به دشواری گفت بسیار خوب، بمانید، بنوشید، حتی شب را هم در اینجا بگذرانید و در حالی که با صدای ضعیفی ناله می کرد، روی نیم تختش دراز کشید که من شب را اینجا بگذرانم، نمی ترسید ناگهان سرش را بلند کرد از چه؟ از هیچ چیز، و همینطور گفتم دهفی پیشگما میکنم ترسیده بودید یا فقط به نظر من اینطور آمده بود ورشنینوف نتوانست خودش را نگاه دارد و فریاد کشید شما احمقید و غضبناک به طرف دیوار برگشت پاول پاولویچ با صدای بلند جواب داد چیزی نیست مریض یک دقیقه بعد از دراز کشیدن به خواب رفت چون کشش عجیبی که همه این روز او را سر پا نگاه داشته بود دفعتا از بین رفته بود و چون مدتی میگذشت گذشت که سلامتیش شدیداً متزلزل شده بود ناگهان حس کرد که مثل ای ضعیف شده است. اما درد شدید ترین دردها بود که خستگی و خواب را هم مقلوب کرد. بعد از نیم ساعت ویدار شد و از جا برخاست و از درد به هم پیچید. طوفان گذشته بود. اتاق پر از دود بود. باتری خالی شده بود. روی نیم تخت دیگر پاول پاولویچ خوابیده بود، به پشت خوابیده و سرش را روی بالش گذاشته بود. حتی لباسش را بیرون نیاورده بود و کفشهایش را به پا داشت. عینک به بدنش آویزان بود و از جیبش به روی کف و اتاق افتاده بود. کولاهش روی زمین در غلطیده بود. ورچانینوو با حالتی تیره او را نگاه کرد اما بیدارش نکرد. در طول ارزه اتاق به قدم زدن پرداخت. دیگر نمیتوانست دراز بکشد ناله میکرد و به درد خود میاندیشید از این درد میترسید بی دلیل هم نبود این بحران ها از مدت ها پیش شروع شده بود اما بسیار بنادرد یک بار در سال و حتی هر دو سال یک بار به سراغش می میدانست که درد از کبد ناشی می شود فشاری سنگین بسیار ضعیف اما ناراحت کننده ابتدا در زیر پرده دل یا بالاتر در یک نقطه سینه حس می شد. گاهی ده ساعت تمام درد رو به افزگش بود. بالاخره درد به شدتی میرسید و فشار به قدری حمل ناپذیر می‌شد که مریض میتررسید از آن بمیرد. آخرین بحران که یک سال قبل اتفاق افتاده بود بعد از ده ساعت درد شدید او را به اندازه ضعیف کرده بود که در بسترش به زحمت می توانست را راتکان بدهند. پزشک قدقا کرده بود که در تمام روز، جز چنگ قاشق چای کمرنگ و کمی نانه آغشته به سوپ چیز دیگری بیاش آمد و بخورد. این درد علل مختلفی داشت اما همیشه بعد از یک هیجانه عصبی ظاهر می شد. به طرز بسیار عجیبی هم قطع می شد. گاهی بعد نیم ساعت درد می استاد. گاهی هم موفق می شدند فقط به وسیله کمپرس گرم بحران را از بین ببرند. بعضی اوقات هیچ چیز موثر نمی افتاد. و درد نمی‌‌ایستاد مگر بعد از اینکه چندین خوراک از داروهای موهع جذب بدن گردد این امر در آخرین بحران اتفاق افتاده بود و پزشک بعدا اقرار کرد که ابتدا گمان کرده بود مسمومیتی در بین است حالا تا صبح خیلی وقت بود و او نمی‌خواست این وقت شب پزشکی بطلبت وانگهی پزشکان را دوست نمی‌داشت نتوانست مدت درازی خودداری کند و بلند می‌نال و ناله هایش پاول پاولویچ را بیدار کرد و روی نیم تخت نشاند. چند دقیقه همان تر ماند او ولچنی را که وسط دو اتاق میدوید با چشم دنبال می کرد و حیران و وحشت زده گوش میداد. پیدا بود بطری را که خالی کرده شدید تر از معمول در او اثر کرده و سستش ساخت است. نمی توانست حواسش را جمع کند. بالاخره فهمید و به طرف ولچانی افتوید و او با لکنت زبان جوابش داد. اول پاولویچ که ناگهان مسترب شده بود گفت این درد کبد است من میدانم پیوتر کوزمیچ پلوسوکین همین مرض را داشت درست همین و از کبد بود کمپرس گرم لازم دارد پیوتر کوزمیچ همیشه کمپرس میکرد ممکن است به مرگ منجر شود من پیش ماورا بروم نیست ورچنینوف با بی‌حوصلگی او را عقب لازم نیست لازم نیست به هیچ چیز احتیاج ندارم اما پاول پاولوویچ خدا میداند چرا مثل اینکه میخواهد فرزند خود را از مرگ نجات بدهد از خود بیخود شده بود نمیخواست هیچ حرفی را گوش کند و پافشاری میکرد که باید کمپرس کرد و یک جرعه دو یا سه فنجان چای کمرنگ بسیار گرم یعنی نه تنها گرم بلکه جوشان سرکشید بی اینکه منتظر اجازه ورچنینوف باشد دوید ماورا را پیدا کرد در ای که مدت ها بود بیکار مانده بود با کمک ماورا تشف فروخت و سماور را تشک در این مدت مریض را دوباره خوابانید. لباسش را درآورد. او را در مرافعی پیچید. 20 دقیقه نکشید که چای و اولین کمپرس را آماده کرد. با زغزغدگی مخصوصی گفت: این ها گرم و داغ هستند. چیز دیگری نداریم و برای فراهم کردن هر چیز دیگر طول میکشد. به شرافتم قسم میخورم که هیچ چیز از این ها بهتر نیست. من خودم آن را روی پیوتر تجربه کردم. ممکن است این درد به مرگ منجر شود. چای را بیاشم. سر بکشید به جهنم اگر سوختید زندگی بیشتر ارزش دارد تا زیبایی به ماوراک خوابالود بود لون لون می کرد. و بوشخابها را در هر سه یا چهار دقیقه عوض می کردند ولچانینوف بعد از سه ومین بشخاب و دومین فنجان چای جوشان که به یک جران را سر کشید ناگهان آرامش یافت پاول پاولویچ فریاد کشید اگر الان درد از شما دور شود باید خدا را شکر کرد خوبی است. و با خوشحالی به آشپزخانه دوید و یک بشقاب و یک فنجان چای دیگر آورد. دائما تکرار می کرد. باید درد را از بین برد، فقط باید از پیشروی جلوگیری کرد. بعد از نیم ساعت درد تسکین یافت، اما مریض به قدری فرسوده شده بود که با وجود های پاول پاولوویچ، از تحمل کردن یک بشقاب دیگر امتناع کرد. چشمهایش از ضعف به هم آمدند. با صدای ضعیفی گفت: خا. خواب. پاول پاولویچ تصدیق کرد. بله، باید خوابید. شب را در اینجا بمانید. چه ساعتی است؟ دو ربع کم. امشب را اینجا بمانید. میمانم، میمانم. یک دقیقه بعد، باز مریض پاول پاولویچ را صدا کرد و وقتی او به طرفش دوید و رویش خم شد، با لکنت زبان گفت: شما شما بهتر از من هستید، من همه را میفهمم، همه را از شما تشکر میکنم. پاول پاولویچ زمزمه کرد، بخوابید، بخوابید، و با نوک پا به طرف نیم تختش برگشت. مریض وقتی داشت به خواب میرفت، فهمید که دوباره پاول پاولویچ با عجله تخت خوابش را مرتب کرد، آهسته لباسش را درآورد آورد، را خاموش کرد و روی نیم تختش دراز کشید. و نفسش را حبس کرد تا صدایی نکند ولچانینو فوراً به خواب رفت اما در تمام مدت خوابش تا لحظه ای که بیدار شد خواب میدید که با وجود ضعف بی اندازش نخوابیده است و مطلقاً نتوانسته است به بل بالاخره خواب دید که در بیداری هزیان میگوید و نمی تواند اشباهی را که دست دسته در اطرافش میلولند از خود براند هرچند که کاملا آگاه بود که همه اینها هزیانی بیش نیست و حقیقت ندارد. هر یک از این اشباه را می شناخت. اتاقش پر از مردم بود و در اتاق کفشکن باز بود، اشخاص گوناگونی داخل می شدند و در پلکان به یکدیگر فشار می آوردند. روی میز در وسط اتاق، درست مانند خوابی که یک ماه قبل دیده بود، مردی نشسته بود. همانطور مانند آن وقت این مرد دستش را به زیر چانه گذاشته بود و با سرسختی حرف نمیزد. اما این بار کلاه گردی که نوار سیاه به آن بسته بود به سر داشت ورچنینو فکر کرد چطور آیا این هم پاول پاولویچ است اما پس از اینکه صورت این مرد خاموش را ورانداز کرد فهمید که مرد دیگری است حیران از خودش می پرسید. برای چه نوار سیاه است است اشخاصی در اطراف میز میلولیدند و حرف میزدند و فریاد میکشیدند و آشوب و جنجال و شتاور بود به نظر میآمد که آنها نسبت به او بیشتر از آنچه که در آن خواب بودند خشمگین هستند با مشت او را تهدید میکردند به جانبش فریاد میکشیدند اما او اصلا نمیتوانست بفهمد فکر میکرد لابت از یان است من چه میدانم میدانم که به اندازه استرابم شدید بود که نتوانستم دراز بکشم و به خواب رفم و اکنون برخواستم و با وجود این فریادها و حرکات این جمعیت به اندازه روشن و به اندازه حقیقی بود که در همان لحظه دوباره شک به درش را یافت آیا ممکن است راستی هزیان باشد؟ این اشخاص از من چه میخواهند؟ خدای من اگر اینها را در خواب نمیبینم. یعنی ممکن است که این فرگات ها هنوز پاول پاولویش را بیدار نکرده باشند. او روی تختش خوابیده بالاخره از نو درست مانند آن خواب ناگهان قضیه اتفاق افتاد. همه به طرف پلکان شتافتند و جلوی در یک دیگر را در هم فشردند. زیرا از پلکان جمعیت تازهی بالا می آمد و وارد اتاق می شود. این اشخاص چیزی را با خود می آوردند. چیزی بزرگ و سنگین بود. صدای پاهای سنگینشان که در پلکان میپیچید به گوش می رسید و نفس نفس زنان پشت سر هم از یکدیگر سؤال سوال می کردند. در اتاق فریادهای او را آوردند او را آوردند پیچید تمام چشم ها درخشیدند و تهدیدآمیز و پیروزمند به جانب ولچانینوف برگشتند او را از پلکان بالا می آوردند ولچانینوف که دیگر شکی برایش نمانده بود که همه اینها حضیان نیست بلکه حقیقت است. روی پنجهی پا بلند شد تا از بالای سرها زود تر ببیند که چرا میآورند قلبش میزد میزد میزد و ناگهان همانطور مانند آن خواب سه ضربت زنگ در اتاق پیچید و همانطور اینبار این بار صدا به اندازه‌ای روشن حقیقی و محسوس بود که مسلما غیر ممکن بود همه اینها در خواب واقع شده باشد فریاد کشید و بیدار شد اما آنطور که بار اول کرده بود نکرد و به طرف در نرفت. چه فکر مبهمی اولین حرکتش را رهبری کرد؟ آیا در این لحظه فقط فکری مبهم داشت؟ مثل این بود که کسی به او می میگفت چه باید بکند. از تخت خواب پایین پرید و مثل اینکه از خود دفاع می کند و حمله ناگهانی را دفع می کند دست هایش را دراز کرد و خود را به جلو انداخت. به جانبی که پاول پاولویچ خوابیده بود، اما ناگهان دستهایش به دستهای دیگری که در بالای سرش دراز شده بود برخورد. آنها را محکم گرفت. بنابراین کسی در اینجا ایستاده و روی او خم شده بود. پردهها از دو طرف کشیده شده بود اما اتاق کاملا تاریک نبود زیرا از اتاق دیگر که پرده نداشت نور ضعیفی میتابید. ناگهان درد شدید حس کرد که از بریدگی انگشتان و کف دست چپش ناشی شده بود. در همان لحظه چیز سنگینی به زمین افتاد و صدای خشکی از آن برخاست ولچنینوف شای از زورش سه برابر پاول پاولویچ بود اما کشتی بین آنها مدت زمانی تقریبا سه دقیقه طول کشید ولچنینوف او را تا به روی زمین خم کرد و دستهایش را به پشت پیچانید اصلا میخواست نمیدانست برای چه این دستهایی را که پیچانده بود ببندد همانطور که با دست چپ مجروحش جانی را گرفته بود با دست راست کورمال کورمال در جاستوجوی تنا پرده بود. آن را پیدا کرد و از جا کند بعد خودش هم از زور زیادی که در این کار به خرج داده بود متعجب شد در مدت این سه دقیقه نه این و نه آن یک کلمه حرف نزدند فقط صدای نفس نفس آنها و صدای خفه کشتی به گوش می رسید پس از پیچاندن و بستن دست های پاول پاولویچ او را به زمین انداخت بلند شد پرده و پشتری ها را به کنار زد در کوچه خلوت دیگر روشنای روز شده بود. پنجره را باز کرد و چند لحظه در برابر آن ایستاد و با نفسی عمیق هوای تازه و خنک را فرو برد. پنجره را بست. آهسته آه آهسته به طرف قفسه رفت. دستمال تمیزی برداشت و دست چپش را محکم به آن بست تا از آمدن خون جلوگیری کند. پایش به تیغ بازی که روی قالی افتاده بود خورد. آن را برداشت و بست و دوباره در جعبش که صبح آن را روی میز نزدیک نیم تختی که پاول پاولاویچ رویش خوابیده بود فراموش کرده بود گذاشت. و در کشوی میزش قرار داد و درش را کلید کرد. فقط آنگاه به پاول پاولویچ نزدیک شد و وراندازش کرد. در این مدت پاول پاولویچ با کوشش زیاد موفق شده بود برخیزد و در صندلی‌اش بنشیند. لباس زیر به داشت و حتی جورا به پایش نبود. پشت پیراهن او استین‌ها غرق در خون بود. خون خودش نبود، خونی بود که از دست مجروح ولچنینوف ریخته بود. خود پاول پاولویچ بود. اما به اندازه خطوط چهرش گرگون شده بود که اگر در آن لحظه کسی او را میدید نمی شناخت. در صندلی راحتی نشسته بود با ناشیگری سعی می کرد بلند شود. اما دست های بستش آزارش میداد. از صورت واریخت و عذا عذاب میخ پدیدار بود. گاهگاهی میرید نگاه بی فروغش را به ولچانی افتوخت. مثل اینکه هنوز از را به وضوح تشخیص نمیداد. ناگهان لبخند احمقانه زد. و با حرکت سر تنگی را که روی میز قرار داشت نشان داد و زمزمه کرد. آب. آب. ولچانی نف برایش آب ریخت و به او نوشانید. او خود را با ولع به روی آب انداخت. پس از اینکه چند جرعه نوشید سرش را بلند کرد. و باز با از با بیشتری ولچانی نف را که در برابرش ایستاده بود و لیوان در دست داشت ورانداز رنداز کرد. اما چیزی نگفت و دوباره به آشامیدن پرداد. وقتی که تمام شد نفسه عمیقی کشید. ورشنینوف بالش خود را برداشت، لباسهایش را جمع کرد، به اتاق پهلوی رفت و در را به روی پاول پاولویچ کلید کرد. درد شدیدی که چند ساعت قبل داشت، دیگر کاملا از بین رفته بود، اما دوباره خستگی بی ای که از زورآزمایی چند لحظه پیش ناشی میشد، او را گرفته بود. خدا می‌داند این زور را از کجا پیدا کرده بود. کوشید آنچه را که گذشته بود، تجزیه و تحلیل کند. اما افکارش هنوز خوب نظم و ترتیب نیافته بود. تقلایی که کرده بود بسیار شدید بود. چشمهایش داشت به هم میرفت گاهی ده دقیقه ای طول میکشید بعد ناگهان از جا می پرید. بیدار میشد همه چیز را به خاطر میآورد. دست زخمیش را که در دستمال اقشته به خون پیچیده شده بود بلند میکرد و با میل حیجان آمیزی به فکر کردن می پرداخت. تنها یک چیز برایش آشکار بود. پاول پاولویچ میخواست. سرش را ببارد اما یک رب قبل از آن شاید خود او هم نمیدانست که این کار را خواهد کرد. ممکن است دیشب نگاهش به این جعبه تیغ افتاده بود و به اینکه کمترین فکری را در او برانگیزد، تصویرش را در خاطر نگاه داشته بوده است. تیغ ها را معمولا در کش میز تحریرش می میگذاشت و آن را کلید می کرد. فقط دیروز صبح آنها را بیرون آورده بود تا چند موی زیادی اطراف سبیل و ریشه دو طرف صورتش را بتراشد و این کار را گاهگاهی می کرد. در بین افکار دیگر این طور فکر کرد اگر او از مدت ها پیش تصمیم گرفته بود مرا بکشد حتما از پیش چاغوی یا تپانچه ای آماده می کرد و تیخهای مرا که هرگز تا دیشب ندیده بود برای این کار در نظر نمی گرفت بالاخره زنگ ساعت شش ضربه نواخت ولچانینوف به خود آمد لباس پوشید و به اتاق پاول پاولویچ داخل شد همین که در را باز کرد نتوانست بفهمد که چرا او را به بجای اینکه فوراً بیرون بیاندازد زندانی کرده بود از اینکه دید زندانیش لباس پوشیده است متعجب شد او توانسته بود خود را از بند رها کند در صندلی راحتیش نشسته بود اما همین که ورچنین افت داخل شد برخاست. کلاهش را در دست گرفته بود به نظر میآمد نگاه مستربش می میگوید صحبت را شروع نکن، لزومی ندارد حرف زدن چه فایده دارد ولچانینوف گفت: بروید. این هم جبهه جواهرتان پاول پاولویچ که نزدیک در رسیده بود به عقب برگشت. جبهه جواهر را گرفت. آن را در جیبش گذاشت و بیرون رفت. ولچانینوف برای اینکه در را پشت سر او ببندد نزدیک در ایستاده بود. آخرین بار نگاه آنها به هم برخورد. پاول پاولویچ ناگهان ایستاد. هر دو تقریبا پنج ثانیه و یک دیگر خیره شدند مثل اینکه تردید داشتند بالاخره ولچانینوف با اشاره مختصر دست و صدای آهسته گفت بسیار خوب بروید و در را بست.